امروز ما در کلیسا هامون با کمبوده رهبری مواجه هستیم. در کتاب نحمیا می بینیم که خدا دنبال رهبران میگرده. همین اصول رهبری می تونه در هر عرصه از زندگی ما کار داشته باشه. اما البته لازمی که در کلیساهامون هامون هم به کار گرفته بشه. لطفا به درس امروزمون که بررسی کتاب نحمیا هست به دقت گوش کنید. نقشه خدا اینه که قدرت خدا رو در قوم خدا برای انجام هدف خدا بر اساس نقشه خدا به کار بگیره. این یک پیام ضروری هست که بهتر بهش بررسی اجمالی از کتاب های ازرا و نهمیا در عهد قدیم بگیم. این کتاب به ما اصول و الگوهایی رو نشون میدن که باید به جا آورده بشه تا کار خدا بتونه توسط قوم خدا انجام بشه. اگه شما مشغول کار خداوند هستید، اگه میخواید در کار خدا نقش داشته باشید، اگه میخواید که مطمئن بشید که کار خدا به وسیله شما انجام میشه، لازمه که به کتابهای نهمی و ازرا مراجعه کنید. و ببینید که اونها به ما در مورد کار خدا چی میگن؟ کتاب ازرا به ما دوازده اصل الگویی رو نشون میده که لازم زمانی که کار خدا توسط گروهی از انسانها انجام میشه به کار گرفته بشه ما قبلن اونها رو دیدیم. ما این دوازده اصل الگویی رو ضمن بررسی کتاب ازرا از متن این کتاب متوجه شدیم. کتاب نهمی روی کرده دیگری از کار خدا به ما میده. کتاب نهمی بر کیفیت رهبران تمرکز میکنه. هایی که خدا باید برای انجام کارش توسط اونها پیدا کنه. اگر در فکر تأسیس کلیسا هستید، اگر در فکر انجام کار بزرگی برای کار خدا هستید لازمه که بر اون دوازده اصل الگوی ازرا از را تمرکز کنید و دعا کنید در کاری که شما بر روی زمین در آرزوی انجامش هستید همونطور که اراده او در آسمان انجام میشه تحقق بیدا کنه. ما در کتاب از را دیدیم که فقط قوم خدا میتونن کار خدا را انجام بدن. شما نمیتونید کار خدا رو با قوت و قدرت انسانی خودتون انجام بدید. باید عطیه های خدا رو داشته باشید و تنها قوم خدا دارند. وقتی خدا در شخصی زندگی میکنه و با او هست، خدا تقویت و مسح روح القدس رو بر او قرار میده. وقتی خدا تمامی این کارها رو در زندگی شخصی میکنه، اون مرد شبیه چی میشه؟ خصوصیات شخصیتی که خدا باید در اون رهبر قرار بده تا بتونه کارش رو در زمین انجام بده چی هستن؟ جواب این سوال نهمیا هست. عزرا و نهمیا شخصیت‌های زیبایی کتاب مقدسی هستند. هر دوی رهبری رو خوب آموقدن اونها الگوهای رهبری متفاوتی دارن از را الگو یک رهبری شبانی رو داره از را کاتب و معلم هست از را همون مرد دیندار خداست از را نخست انسانها رو با خدمتش به سوی کلام خدا هدایت میکنه راههای زیادی برای هدایت قوم خدا هست یک شبان میتونه چون رهبر بزرگی هست قوم رو رهبری کنه او میتونه قوم رو رهبری کنه چون که او یک مجری با استعداد روحانی هست. او میتونه مردم رو به دلیل اینکه یک مبشر و یک معلم خوب هست هدایت کنه الگوی رهبری ازرا الگوی معلمی بود همونطور که دیدیم ازرا آتیه بزرگ تعلیم و اشتیاق عمیقی برای تعلیم داشت ازرا قوم خدا رو به اون وسیله هدایت کرد ازرا همینطور قوم خدا را با سرماش قرار دادن خودش هدایت کرد وقتی قوم خدا نیاز به بیداری داشتن او بیرون میرفت و در زیر باران در مقابل خدا سجده میکرد. روزه می گرفت و دعا می کرد و به خاطر گناهان قوم گریه میکرد. مردم یکی یکی به از را ملحق می شدند. این بیداری عظیمی را به دنبال داشت. این نهوه دستیابی از را به بیداری بود. نحمیا ها روی کرده متفاوتی در مورد رهبری داشت. وقتی نحمیا فرماندار بود، مردم نیاز به بیداری داشتند. یهودیان وقتی در بابل بودند با قوم های غیر یهودی ازدواج کرده بودند و وقتی از بابل برگشتند این ازدواج با بیگانگان به شدت نهمیا رو آزار میداد به نحوه دستیابی نهمیا به بیداری گوش کنید در کتاب نهمیا آمده در اون روسا بعضی از یهودیان رو دیدم که زنان از اشتودیان و امونیان و معابیان گرفته بودن و نصف کلام پسران ایشان در زبان اشتود می بود و به زبان یهود نمی توانستند به خوبی تکلم نمایند. بلکه به زبان این قوم و آن قوم بنابراین با ایشان مشاجره نموده ایشان را ملامت کردم و بعضی از ایشان را زدم و موی ایشان را کندم و ایشان را به خدا قسم داده گفتم دختران خود را به پسران آنها مدهید و دختران آنها را به جهت پسران خود و به جهت قیشتن مگیدید. میتونید ببینید که نه روش دیگری برای رهبری داشت. من شبانهای زیادی رو نمیشناسم که به این ترتیب رهبری کنند اما نحوه رهبری اونها اونطور بود شما میتونید بگید که از را معمار کلام خدا بود که نسخه های فراوانی رو از کلام خدا تهیه کرد اما نحمیا بنا بود نحمیا یک مرد خدای اهل عمل بود نحمیا یک پرراه و مجری روحانی بود او باور داشت که بیرون میره و میبینه که کار خدا انجام شده هر دوی این مردان نمونه های عالی رهبری هستند اگرچه اونها نمونه های بسیار متفاوتی هستند وقتی که وارد کتاب نهمیا میشیم باید به دنبال اصول رهبری باشیم یا مشخصاتی که در هنگام انجام کار خدا خدا باید در یک مرد خدا قرار بده کتاب نهمیا رو بخونید و ببینید اون ویژگی های شخصیتی چی هستند بهتر کتاب نحمیه رو نموداری از یک رهبر برای انجام کار خدا بخونید این اولین مشخصه ای است که خدا وقتی میخواد کاری مانند زمانه همیا انجام بده باید در یک شخص پیدا کنه. خدا دنبال کسی میگرده که در قلبش باری برای انجام کار خدا داره. به عنوان یک شبان وقتی مردم میاند و میگن شبان لازمه که کاری برای جوانها ها بکنیم، ما خیلی نسبت به جوانها در قلبمون بار احساس میکنیم من تقریبا همیشه از اونها میخوام که اونها با جوانها ها کار کنن. من متوجه شدم کسانی که باری در قلبشون دارند اکثر اوقات کسانی هستند که خدا اونها رو برای انجام کاری خاص دعوت کرده. یکی از اولین نشانه هایی که نشون میده خدا میخواد از طریق شما کاری انجام بده اینه که شما باری بزرگ در قلبتون احساس میکنید. بنابراین به عنوان یک شبان من معمولا برای انجام کار خاصی دنبال کسانی میگردم که برای اون کار بار دارن. اگر خدا باری بزرگ برای کار خاصی به شما داده و اگر شما برای اون کار دعا می کنید شاید خدا بخواد که شما شخصا بخشی از پاسخ اون دعا باشید. این دومین خصوصیتی است که وقتی خدا میخواد رهبری برای کارش انتخاب کنه باید دنبالش بگرده. وقتی خدا کسی رو میخواد که کارش رو رهبری کنه، اون شخص باید از خدا کلامی در رابطه با کار خدا دریافت کنه. در جلسه قبلی گفتم کسی که کار بزرگی برای خدا انجام میده، رویای خودش رو برای انجام کار خدا، از کلام خدا میگیره اونها از کلام خدا پیغامی در رابطه با کار خدا دریافت میکنن این در کتاب نهمیا به تصویر کشیده شده نحمیا نشون میده که او مردیه که برای کار خدا بار داره در نهمیا یک چهار می بینیم که وقتی نحمیا میشنوه حسارهای اورشلیم مخروبه مانده و شهر به توده‌ای از خاک رو به مبدل شده گریه میکنه کلام خدا میگه چون این سخنان را شنیدم نشستم و گریه کرده ایامی چند ماتم داشتم و به حضور خدای آسمانها روزه گرفته دعا نمودم ببینید نهمی بیتفاوت نیست او حقیقتا برای انجام کار خدا بار داره بعد در آیات هشت و نه همین باب میخونیم که خدا این حقیقت رو در قلب نهمی قرار میده کلام اینطور میگه پس حال کلامی را که به بنده خود موسا امر فرمودی به یاد آور که گفتی شما خیانت خواهید ورزید و من شما را در میان امتها پراکنده خواهم ساخت اما چون به سوی من بازگشت نمایید و اوامر مرا نگاه داشته به آنها عمل نمایید اگرچه پراکندگان شما در اقصای آسمان باشند من ایشان را از آنجا جمع خواهم کرد و به مکانی که آن را برگذیده ام تا نام خود را در آن ساکن سازم در خواهم آورد اورشلیم جایی که من تصمیم گرفتم در آن زندگی کنم و شهر من خرابه مونده. نحمیا با خودش فکر میکنه اورشلیم جاییه که من تصمیم گرفتم در اون زندگی کنم و شهر من خرابه مونده. نحمیا این کلام رو در رابطه با کار خداوند میگیره که خدا از او میخواهد حسارهای اورشلیم رو بازسازی کنه. اینجا سومین خصوصیتی هست که خدا باید برای کارش در شخصی به عنوان رهبر پیدا کنه. خدا باید کسی متعهد به کار خودش که میخواد انجام بده پیدا کنه. رهبر کار خدا باید بار داشته باشه باید کلام خدا رو داشته باشه و باید متعهد به کار خدا باشه نهمیا تعهدش رو به خدا زمانی نشون میده که ساقی امپراتور هست در اون ایام اگر کسی ساقی امپراتور بود باید شرابی که اون میخورد قبلاً میچشید. اگر کسی سعی میکرد شاه رو مسموم کنه ساقی باید سم رو مینوشید تا جان شاه رو حفظ کنه به عنوان ساقی نهمیا مرتباً در حضور شاه بود در دربار پادشاهان فارس و ماد قانونی بود که نباید کسی در حضور امپراتور غمگین باشه ظاهرا اونها در اون ایام تأثیر افکار منفی رو میدونستند اونها میدونستند که انسان باید مثبت باشه و اگر کسی از اونها میپرسید که حالتون چطوره نباید از چیزهای غم و منفی چیزی به اونها میگفتید اگر شما در حضور شاه فارس افسرده و غمگیم می شدید شاید کشته میشدید. در باب دوم نهمیا ما میخونیم که روزی امپراتور به بنهمیو نگاه میکنه و میگه چرا انقدر غمگینی نهمیا میگه که بسیار ترسیده بود شاه گفت به نظر میرسه که در دردسر بدی افتادی و نهمیان میگه که من بینهایت ترسان شدم و اینجاست که او تعهد خودش رو نشون میده چون که میگه به پادشاه جواب دادم و گفتم پادشاه تا به ابد زنده بماند چرا نباید غمگین باشم شهری که موزه قبرهای پدرانم هست خراب شده و دروازههایش در آتش سوخته نهمیا میتونست به همین دلیل کشته بشه چون در واقع او گفته بود بله من غمگینم و بهتون میگم چرا نهمیا میتونست در همون نقطه اعدام بشه به همین دلیل بود که خیلی ترسیده بود و همراه با دعا به شاه پاسخ اما خداوند با نهمیا بود چون که گفت خب چه میطلبی نهمیا میگه با دعایی سریع به سوی خدای آسمان ها جواب دادم اگر پادشاه را پسند آید و اگر بندت در حضورش التفات یابد، مرا به یهودا و شهر مقبره های پدرانم بفرستید تا آن را تعمیر نمایم. احتمالا شما بقیه داستان را میدونید امپراتور نه تنها با درخواست نهمی موافقت کرد، بلکه تمامی چیزهایی که برای انجام این کار لازم بود در اختیار او گذاشت. خدا نهمیه رو به خاطر تعهدش برای انجام کار خدا برکت داد. مشخصه که خدا این بار رو برای انجام کارش در قلب نهمیه قرار داده و در رابطه با این کار به او کلامی داده و خدا این تعهد رو نسبت به انجام کار خدا در نهمیه ایجاد کرده بود. به علاوی این سه خصوصیت یک رهبر، این چهار ویژگی یک رهبر هست که خدا باید برای انجام کارش در یک شخص پیدا کنه. رهبر کار خدا باید کسی باشه با رویایی برای کار خدا کلام خدا میگه جایی که رویا نباشه مردم هلاک میشن رهبر کار خدا باید رویا داشته باشه رهبر کار خدا نه تنها باید رویا داشته باشه بلکه باید اون رویا رو با دیگران درمیون بذاره رهبر خدا همیشه رویاش رو برای کار خدا با دیگران درمیون میذاره در می باب دوم نهمیا ملاحظه میکنید کنید که نحمیا یک رویا داره وقتی او با اورشلیم برمیگرده میخونیم که میگه به کسی نگفته بودم که خدایم در دل من چه نهاده بود که برای اورشلیم بکنم. خب این یک رویا هست. نقشه ای که خدا در قلب او نهاده بود، یک رویا بود. بعد در مورد کاری که میخواست بکنه با کاهنان و سروران یهود صحبت میکنه. این زمانی بود که او رویاش رو با اونها در میون گذاشت. قوم خدا پاسخ دادن بسیار خوب. بیایید حصارها رو تعمیر کنیم و کار شروع شد. نه همیا کسی بود که برای کار خدا رویایی داشت و اون رویا رو با قوم خدا در میون گذاشت. پنجمین مشخصه برای یک رهبر و همراهان او برای کار خدا اینه وقتی این رهبر که رویایی از خدا داشت که اون رو با دیگران در میون میذاره، اون افراد از او تبعیت کنند گاهی رهبرانی که روحانی هستند، زمان زیادی رو صرف این واقعیت میکنند. که قوم خدا با او همکاری نمی کنند. اون عده از ما که فرا خوانده شدیم که رهبر یا شبان قوم خدا باشیم باید بدونیم که نداشتن کسانی که از ما پیروی کنند نکته زعفی در رهبری ما محسوب میشه. این حقیقت چون یکی از نشانه های رهبران خدا این هست که بتونن قوم خدا رو تشویق به پیروی او در انجام کار خدا کنند. خدا به رهبرش رویایی میده و وقتی که اون رهبر رو با قوم خدا در میون میذاره، اونها برانگیخته میشند که برای تحقق اون رویا با او همکاری کنند. تعریفی هست که میگه رهبر یعنی کسی که پیروانی داره. این تعریف بسیار ساده و در عین حال حقیقتی بزرگ برای یک رهبر هست. ششمین مشخصه یک رهبر اینه. کسی که کار خدا رو رهبری میکنه، باید انتقاد پذیر باشه. اگر انتقاد پذیر نباشید اون موقع هیچ کاری انجام ندید اگر انتقاد نمیخواید تصمیم بگیرید که هرگز کاری انجام ندید چون که یقینا به محض اینکه شروع به کاری بکنید مخصوصاً کار خدا همینطور که در نمونه ازرا میبینید باید در انتظار مخالفت ها باشید و بتونید در مقابل انتقادها مقاومت کنید شما حتی باید در انتظار انتقاد از طرف قوم خدا باشید که شاید حتی نابغه های روحانی باشند شما اگر حقیقتا رهبر کار خدا هستید با انتقادهای زیادی مواجه خواهید شد نهمیا این شخصیت و ویژگی را از خودش نشون میده چون یقینا او منتقدانی داشته هفتمین خصوصیت رهبر خدا اینه که اون شخص باید زندگی بر حول محور دعا داشته باشه در کتاب نهمیا ملاحظه می کنید که نههمیا چند بار در مورد دعا کردنش با ما صحبت میکنه نه حمیه وقتی مردم او را مسخره میکنند و به او میخندند ناخداگاه دعا میکنه نه دعا میکرد و میگفت ای خدای ما بشنو زیرا را که خار شده ایم و ملامت ایشان را به سر ایشان برگردان یا او به ما میگه که دعای سریعی به حضور خدای آسمانها میکنه و بعد به پادشاه جواب میده او آشکارا مردی بوده که در هر شرایطی دعا میکرده او به ما نشون میده که معنی نصیحت پولس چیه که میگه از دعا کردن دست نکشید همواره به دعا کردن ادامه بدید هشتمین خصوصیتی که یک رهبر خدا باید داشته باشه اینه او باید کسی باشه که شخصا به همراه کسانی که با او کار میکنند کار کنه وقتی من در دانشکده بودم در طول تعطیلات تابستانی در یک محله پرجمعیت در شهری بزرگ در برنامه اجتماعی کار میکردم اون شهر یک برنامه سرگرمی برای نوجوانان داشت رئیس ما مردی بود که معتقد بود تمامی مشکلات شهر را از طریق سالمسازی اوقات فراغت نوجوانان میتوان حل کرد. وقتی او ما را به محلات میفرستاد، به ما میگفت که از شما انتظار دارم در این برنامه ها با مردم همراه باشید، نه که در خدمت آنها باشید. مثلا به ما میگفت اگر قرار هست برنامه بازی بیسبالی برای پر کردن وقت اونها برگزار بشه، انتظار داره که ما هم همراه اونها بازی کنیم و یا اگه بازی بسکتبالی انجام میشه میخواد که ما هم در اون بازی شرکت کنیم نه اینکه توپی به طرف اونها پرت کنیم و بگیم امروز این سرگرمی برای شما ترتیب داده شده او میگفت وقتی از مراکز شما بازدید میکنم میخوام که شما رو در مرکز هر فعالیتی ببینم از شما انتظار دارم که به همراه اون جوانان تفریح کنید نه اینکه برای اونها امکانات تفریح فراهم کنید سالها بعد وقتی شبان جوانی بودم من اون شعار رو در خدمت خودم به یاد آوردم و به کار گرفتم ایسای مسیح با جوانان نه برای جوانان یک رهبر کار خدا نباید مردم رو به کاری هدایت کنه که خودشون کار رو انجام نمیده ما میبینیم که نهمی وقتی بر بالای دیوار به همراه مردم در کار بازسازی شرکت میکنه این خصوصیت رو برای ما مجسم میکنه نهمین خصوصیت برای یک رهبر خدا اینه که باید در مقابل مخالفت‌ها و موانع کار خدا خشمی درست داشته باشه فرق بین خشم درست و عصبانیت چیه وقتی که شما عصبانی هستید سوالهای مهمی اینها هستند از دست چه کسانی عصبانی هستید منبع خشم شما چیه و چی یا کی مخاطب خشم شماست اشعیا گفته همه ما مانند گوسفندان گمراه هستیم که هر کدام به راه خود رفته‌ایم وقتی چیزی یا کسی مانع راه شما میشه چی کار میکنید؟ آیا سعی میکنید از اون مانع بالا برید؟ سعی میکنید از میان اون مانع تونل بزنید؟ سعی میکنید اون مانع رو دور بزنید یا بر زمین لگت میزنید و فریاد میکشید؟ اگر فقط لگت بزنید و فریاد بزنید این کاری بچه است. این مثل کاری هست که وقتی یک پسر بچه با مانه مواجه میشه بدخلقی میکنه و گاهی اون خلقی بر تمام اهل خانه اثر میذاره اگه شما به این دلیل عصبانی باشید که کسی یا چیزی مانع کار شما شده و شما تصمیم گرفتید که به کارتون ادامه بدید اون خشم یک گناه است. اما وقتی که کار خدا را انجام میدید و شما از دست اون نیروهای جهنمی عصبانی هستید که در صددن مانع کار خدا بشن اون وقت خشم شما خشمی درست هست وقتی که ایسادید دید کارکنان معبد خانه خدا رو به دکان و محل تجمع دزدان تبدیل کرده اند خشمی درست از خود نشان داد این فرق داره شما خشم درستی رو در رهبران خدا میبینید یک رهبر کار خدا وقتی با زدیتی در پیشرفت کار خدا مواجه میشه میتونه خیلی خیلی عصبانی بشه که عصبانیتی درست و بجا هست نه این عصبانیت درست رو برای ما نشون میده نهمیا چنین رهبری هست دهمین مشخصه رهبر خدا اینه که او باید شخص فداکاری برای کار خدا باشه. به این آیات از نهمیا باب چهار گوش کنید. او میگه پس به کار مشغول شدیم و نصف ایشان از طلوع فجر تا بیرون آمدن ستارگان نیزه ها را گرفتن و هم در آن وقت به قوم گفتم هر کس با بندگانش در اورشلیم منزل کند تا در شب برای ما پاسبانی نماید و در روز به کار بپردازد. و من و برادران و خادمان من و پاسبانانی که در عقب من میبودند هیچ کدام رخت خود را نکندیم و هر کس با اسلحه خود به آب می رفت. این تصویر خوبی از معنی کلمه فداکاری هست. توجه کنید که نهمیا وقتی میخواد فداکاری را شرح بده میگه ما چون که خود او به همراه تمامی اون مردان فداکار کار میکرد. نهمیا مردی بود که متعهد به انجام کار خدا بود. یازدهمین این خصوصیت یک رهبر خدا اینه. رهبر خدا کسی هست با دیدی متمرکز. این خصوصیت میتونه مثبت باشه یا منفی. مثلا هیتلر مردی بود با دیدی متمرکز. او وقتی که با افسرانش صحبت میکرد و به اونها دستوراتی میداد به چیز دیگری توجه نداشت. این خصوصیت در شخصیتی مثل هیتلر خصوصیتی منفی هست. اما این خصوصیت در یک مرد خدا که سرگرم انجام کار خدا هست میتونه ویژگی مثبتی باشه. نهمیا در یک موضوع تمرکز کرده بود و از اون چیزی که خدا در قلبش گذاشته بود چشم بر نمی داشت. اونها نتونستن مانع کار نهمیا در ساختن حصار شهر بشن. میشنوید که نهمی میگه من مشغول کار بزرگی هستم. چرا باید بیستم و با شما ملاقات کنم؟ بسیاری سعی کردند که به عناوین مختلف او رو فریب بدن که از دیوار پایین بیاد اما نتونستن مانع تمرکز نهمیا بر هدفش بشن. او فقط هدفش رو میدید و به حرفهایی که دیگران می زدن، توجهی نداشت. اونها می نحمیا تو نمیتونی اینطوری دیوار رو بسازی. نهمیا هما نمونه مثبت از شخصی با دید متمرکز بود. اولین باری رو که در مورد مفهوم دید متمرکز شنیدم هرگز فراموش نمی کنم. سالها قبل شنیدم که یک معاون شرکت کشتی سازی با گروهی از تجار صحبت می کرد. از او دعوت شده بود که برای گروهی از تجار صحبت کنه و توضیح بده که چطور شرکت کشتی سازی او توانسته بود تمامی قراردادهای ساخت کشتی های بزرگ رو به خودش اختصاص بده در حالی که دیگر شرکت های کشتی سازی حتی نتونسته بودند در مزایده های بزرگ شرکت کنند. شرکت او سفارش ساخت یک کشتی بزرگ را دریافت کرده بود رقم پیشنهادی او زیر 38 میلیون دلار برآورد شده بود این مردان تاجر میخواستند که راز موفقیت او را بدونند جواب او این بود دید متمرکز ما دید متمرکز داریم ما هر چیزی رو که دیگران میگن نادیده میگیریم شما هم میتونید این کار را بکنید تصمیم گیری مفهوم بزرگی در کتاب مقدس هست تصمیم گیری در هر موردی بسیار مهم است این روزها در مورد اهمیت تصمیم گیری زیاد میشنوید نحمیا به ما نشون میده که تمرکز دید و تصمیم گیری یکی از ویژگی های یک رهبر بزرگ است نهمیا هرگز تمرکز خود را از دست نداد دوازدهمین خصوصیت شخصی که میخواد رهبر کار خدا بشه اونطور که که نحمیا به تصویر کشیده اینه. رهبر باید که با اعتقادات قوی باشه مشاهده میکنید که نهمی ها چقدر در مورد کار خدا جدی و سخت کوش است در باب 5 وقتی نهمیا میفهمه که یک مشکلی هست و بعضی از مردم از دیگران بهره و ربا میگیرند اونها رو وادار میکنه که توافق کنن و مزرعه و تاکستان و باغات کسانی رو که اموالشون به گرو گرفته شده به خودشون رد کنن یادتونه نهمیا؟ با والدینی که اجازه داده بودند فرزندانشون با بیگان ازدواج کنن چه رفتاری کرد؟ نحمیا به اونها ناسزا گفت به اونها مشت و لگت زد و موهایشان را کشید نههما با خاران نیز به همین نحو رفتار کرد وقتی که می بینید نه همی ها چطور با این مردان سرسخت رفتار میکنه میفهمید که او مردی با اعتقاداتی قوی بود سیزدهمین خصوصیت یک رهبر کار خدا اینه. یک رهبر کار خدا اطمینان عظیمی به خدا داره ها می میدونه که داره کار بزرگی برای خدا انجام میده او قطعا یقین داره که خدا او رو برای انجام این کار فرا خونده و این به او اطمینان قلبی میده چهاردهمین این خصوصیت رهبر کار خدا اینه او باید شخصی جسور و بیبات باشه جسارت یکی از مهمترین ویژگی رهبری هست که خدا میتونه تونه به کار بگیره 15 خصوصیت یک رهبر کار خدا اینه. او باید شخصیتی با پوشکار باشه در باب پنجم کتاب رومیان پولس ای رو شرح میده که تیون خدا از رنجها برای آماده‌سازی رهبران برای کار خود استفاده می‌کنه به عنوان بخشی از اون دوره خدا از رنجها استفاده می‌کنه تا در یک رهبر چنان پوشکاری ایجاد کنه که مانع بشه اون رهبر کارش رو ترک کنه پولس وقتی این خصوصیت رو شرح میده او میگه امید ما به دست بدل نمیشه چون که خدا محبتش رو در قلب های ما توسط روح قدوسش ریخته در زبان اصلی معنی آیه اینه اونها دست از کار نخواهند کشید و ثابت قدم خواهند اگر شما خادمین رو در سراسر دنیا ببینید که خدا از اونها به عنوان وسیله برای انجام کارش استفاده میکنه خواهید فهمید که پشتکار ویژگی بارز اون خادمین هست اونها اونجا میمونند و میمونند و میمونند شاید 25 سال و 40 سال یا 50 سال شاید گاهی 15 یا 20 سال طول بکشه تا یک بیداری بیاد و مردم تغییر کنن من چون این خادمین و سازمانهای خدمتی رو در سراسر دنیا دیدم پشتکار یکی از خصوصیات بارز رهبران کار خدا هست خصوصیت شماره 16 اینه رهبر کار خدا باید عطیه مدیریت داشته باشه بعضی وقتها توی کلیسا و کار خدا می بینیم که برنامه ریزی یا ساماندهی کاری غیر روحانی هست. بعضی ها مخالفت خودشون را با ساماندهی با گفتن این نشون میدن. شما میتونید به روح القدس خارج از کلیساتون برنامه بدید. به نظر میرسه که فکر میکنن باید یکی از این دو مورد باشه که یا کلیسا توسط الغاعت روح القدس داره بشه و یا کلیسایی باشه که با میشه. نهمی ها به ما نشون میده که هر دو مورد ضروری هست. اگر کتاب مقدس را مطالعه کنید که یک برنامه کار برای کلیسا و برای کار خدا هست، خواهید فهمید که برنامه ریزی معیز کننده نیست. سازماندهی فکری کتاب مقدسی هست. در کتاب مقدس، دستورالعمل‌های قطعی برای کار خدا در کلیسا توصیه شده. رهبر کار خدا اغلب مردی هست با عطیه سازماندهی. در باب هفتم کتاب ها می میشنویم که نهمیا میگه من افرادی تعیین کردم و اونها مسئولیت دادم راهکارهایی تعیین کردم دستورالعملهایی دادم و مردم رو یک جا جمع کردم نهمیا نمایی از رهبری با آتیه سازماندهی هست. در کتاب مقدس رهبرانی مانند نهمیا اکثر اوقات آتیه سازماندهی رو دارن و گاهی اوقات رهبرانی مثل عزرا چنین آتیه‌ای ندارن رهبرانی مانند از را نیازی به تیه سازماندهی ندارن. هفته همین خصوصیت رهبری کار خدا اینه. رهبر کار خدا شخصی هست که هدفش در اولویت قرار داره. نهمیا چنین رهبری رو به تصویر میکشه در نهمیا باب با ده آیه سی تا سی و هفت اولویت های نهمی رو ملاحظه کنید، نهمیا به عنوان رهبر مردم رو فرا می خونه. او موافقت اونها رو برای بعضی چیزها جلب میکنه تمامی کارهایی که برای تحقق بخشیدن به اولویت‌هاش لازم هست انجام میده نه از مردم قول میگیره که اجازه نند بچه هاشون با بیگانگان ازدواج کنند از اونها قول میگیره که در روز ثبت کار نکنن از اونها قول میگیره که در سال هفتمین کار نکنن نه اصرار میکنه که اونها برای خودشون مالیاتی برای معبد قرار بدن و از اونها قول میگیره که نوبر محصول خود را به خدا بدن اونها رو ملزم میکنه که نخوص زاده های پسران و حیوانات خود رو آنطور دور که در تورات نوشته شده به خدا بدن قوم خدا به نهمی ها قول میدن که دهی که هر چیزی رو به خدا بدن این به ما نشون میده که نهمیا رهبری بوده که اولویت هایی داشته او میدونه اولویت هاش چی هستن و قوم خدا رو هدایت میکنه که اولویت های خدا رو بپذیرند نهمیا یقینا رهبری هست که نخستین اولویت چیزهای روحانی هستند هر کسی باید اولویت هایی برای خودش داشته باشه اولویت های شما چی هستند من پیشنهاد می میکنم که لیستی از ده اولویت خودتون تهیه کنید و خدا و نقشه او رو برای زندگیتون در صدر اون قرار بدید اگر میتونید این کار رو با صداقت بکنید و بعد نه تای دیگر رو تعیین کنید نه همی همینطور همینطور خصوصیت رهبر کار خدا رو نشون میده که خودش شخصا کار رو رهبری میکنه. رهبر خدا شخصی هست با عصای شبانی. مانند یک شبان نیکو او از چوب دستی شبانی برای هدایت و تنبیه قوم خدا استفاده میکنه. نوزدهمین خصوصیتی که توسط نهمیا به تصویر کشیده شده اینه. رهبر کار خدا شخصی هست که با انسانیت خودش روبرو میشه. رهبر یک انسانه و این رو می دونه. نهمیا هم جز همون انسان هاست. انسانیت نهمیا به وضوح دیده میشه وقتی او کار بزرگی رو به پایان میبره اغلب میگه خدایا این چیزهای خوب رو که من انجام دادم به یاد بیار و منو برکت بده خدا اجازه میده که شما نفس انسانی اونها رو در هر یکی از شخصیت کتاب مقدس ببینید این اونها رو مثل الگوهای دست یافتنی واقعی تر میکنه بالاخره نهمیان 20مین خصوصیت رهبر کار خدا رو به ما نشون میده رهبر کار خدا کسی هست که میتونه همراه با عیسی بگه من کاری که به من سپردی به کمال رساندم و این گونه تو را بر روی زمین جلال دادم نه همیه رو تموم کرد ما هرگز نباید دیدمون رو نسبت به پایان کار خدا از دست بدیم این امکان برای من و شما هست که بتونیم در پایان و عمرمون همون چیزی که ایسا گفت بگیم پدر کاری را که به من سپردی به کمال رساندم و این گونه تو را بر روی زمین جلال دادم. جی میلیوت خادمی که شهید شد در دفتر خاطراتش این طور نوشته. وقتی که برابر نقشه و هدف خدا زمان مرگ شما فرا میرسه، بدونید تنها کاری که باید بکنید اینه که بمیرید. رهبر کار خدا کسی هست که میتونه همراه با عیسی بگه تمام شد. این درس از کتاب نحمیا. خصوصیات مورد نیازی رو به ما یادآوری میکنه که لازمه یک شخص به عنوان یک رهبر کار خدا داشته باشه. ما همینطور میتونیم از این به عنوان دعا برای کسانی که به عنوان رهبر کار میکنن استفاده کنیم که خدا اونها رو رهبرانی بسازه که با ساب این خصوصیات باشن. ترتیبی بدید که در برنامه بعد، در سفر، در اعماق کلام خدا همراه ما باشید. و حقایق عملی رو بیاموزید که بتونین در زندگی شخصی خودتون به کار بگیرید.